بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین وصحبه اجمعين اما بعد طب ما در بموله بحث حنفی هستیم بحث ایمان آیا زیاد میشه یا زیاد نمیشه کم زیاد میشه یا نمیشه ما در بحث اختلاف هم گفتیم بین اهل سنت و بین مرجعی فقه آیا اختلاف لفظی هم معنوی گفتیم که اختلاف معنویه اختلاف جوهریه ما این مسئله رابطه رو دقیق شرح دادیم و طبقه مسائلی که خونده بودیم بیان کردیم حالا ما بیارم ببینیم حنفی ها خودشون چه موقفی دارن چه اکس عملی از خودشون نشون دادن ضد مخالفین خودشون چی گفتن؟ ببینیم چی میگن خب حالا یکی از مسائلی که حسی که از حنفی ها نقد میکنه چین اینه؟ ابن نجیم از خنبی ها در کتاب بحر رائق در کتاب بحر رائق جلد پنجم صفحه صد سی چنین میگه: که بیگه از جمله اقوال کفری اینه که یک شخص بیگه ایمان کم و زیاد میشه کفره یک از کفرها را یک از اقوال کفر را کم و زیاد شدن ایمان به حساب آورده این یکی از اینمه شد ها امام ابن نجیم ابنالوجی محنفی صاحب کتاب بحر رائق و یک از اموری حساب کرده که انسان به اون مرتد میشه یک مسلمان مرتد میشه یعنی یک مسلمانی بگه ایمان من کم میشه یا زیاد میشه که ایشخص کافر مرتد از دین بداره حد اقلشون حد اقلشون حد اقلشون چیلین میگن که حالا از این, غلوبش از این غلوبشون غلوبشون کمتر باشه چینی میگه که کسی که بگه که ایمان کموزیات میشه مبتدع است. اینم ابن ابن الحاکیم سمرقندی میگه میگه که ينبغي ان يعلم ان يعلم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. لان من يرى الزيادة والنقصان في الايمان فهو مبتدع. من يرى الزيادة والنقصان في الايمان فهو مبتدع. و نمی‌گوید که آیا این کتاب‌هایی که می‌خوانم از آن‌ها این کتاب‌هایی که می‌خوانم از آن‌ها استفاده می‌کنم؟ نمی‌گوید که آیا این کتاب‌هایی که می‌خوانم از آن‌ها استفاده می‌کنم؟ نمی‌گوید که آیا این اون جمع هایی که ائمه نقد کردن در اینکه ایمان زیاد و کم میشه آیا میشه گفت یک شخصی که بگه ایمان و کم ایمان کم و زیاد میشه کافر یا مبتدی ببینیم این حرف کی زده اولا از بزرگترین اصحاب ما عمر بن خطاب داریم قبلا این اثر بیان شده لیکن بعدا دوباره من میگم ای بن خطاب چیزی میگه با اصحابش هل منزاد و ایمان و در رب زد تعالی و نزداد ایمانم بی ایمانم زیاد بشه این عثرا که تخریجش کرده روایتش کرده با سند امام ابن بشیع در مصنفش و در کتاب ایمانش و امام خلال در کتاب سنت اجوری در شریعت ابن بصه در ابانه لالکایی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و بیهقی در شعب ایمان با اسناد صحیح نگاه بکنی عقیده تحاویی که ما داریم همونطور که دوستمون گفتن گفتن که چی؟ گفتن امام تحاویی چنین نقل می میکنه که ایمان چیه؟ اعتقاد به قلب و قول به کی که این قول مرجعه که ها اینجا خلاف این گفته امام بر خلاف اعتقاد اهل سنت و جماعته ما گفتیم اگه یادتون هست در درستان ما گفتیم ما این مدن را به عنوان یک عقیقه سلف شمردیم به حساب ووردیم به عنوان یک چی اعتقاد سلف چرا؟ گفتیم اعتقاد سلف اعتقاد عصیقیه اعتقاد قدیمیه یک اعتقادی که در زمان رسول الله بوده صحابه داشتن رسول الله داشته و بعد از اون تابعین و تابعه تابعه ما یه چیزی که میخوام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 کی میتونه بفهمه این قرآن؟ آیا کسی میتونه بفهمه ما یعجم میتونیم بفهمیم اگر اونهایی که عربن و قرآن عربی مبین بوده اگر اونها نتونن بفهمه کی میخواد بفهمه ما میخوام بدونیم و این تو گوشتون باشه تو ذهنتون باشه و من مشاققه الرسول من بعد ما تبین له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين مشاقل بکنه راه قیامبه از راه قیامبه بتر بره و راه غیر سلیل المؤمنین اون مؤمنانی که بودن در اون هست که بودن غیر از کسی هست؟ راه غیر از اون مؤمنین راه برای خودش انتخاب بکنه نولیه ما تولا و نصفه جهنم و ساعت مخیره قرآن اومده که ما رو بفهمونه اگر اونها نفهمیدن، ما چطور میزنیم بفهمید؟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 در بحث صفات خدا، در بحث حقوق خدا، در بحث حقوق رسول الله، در بحث ایمان به بهشت، ایمان به روز قیامت، حوض، محشر، عذاب قبر، همه مباحث اعتقادی مباحثی می‌گیری. آیا مجرد فلسفه‌ای که این آخرین سلف تقول میکنیم خیر؟ بلهات و برهان، و برهان دلیل، مدرک و داشته این مدت هاوین خلاصه حرف آخرین سلف. ما وازع می‌گادیم به چی؟ به اصلش. عطوه سلف رو ما اینجوری قبول نمی که فلان چق میگه سلف ابن تیمیه هم نیست یک شخص بگه نه این عقیده سلف رو ممید. ممید. ابن تیمیه وارد نه این اعتقادی که الان ما میگیم ما میگیم به ما میگن که شما ابن تیمیه ای هستید از مدرسه ابن تیمیه داره صحبت می کنید شما وهابی هستید آیا واقعا این وهابیتی که ما اعتقاد صحابه داشته باشیم ما اعتقاد سلفی که داریم همینطوری نیست ما با اسناد نق ما مکتبی اصول اعتقادری مثل امام با کی با اسناد اعتقاد حضرا کرده الان اثر ابرا عمرو بن خطاب داریم امام الاعلی کی هیچ امام ابن ابی ای یک ای از بزرگترین ائمه اهل سنته که دو قرن بیشتر با عادن و فاصله نداره دو قرن کمتر. تر و اول بیشتر فاصله نداره با اثر نبوت و با صحابه 50 تا 100 سال بیشتر فاصله نداره آیا این اشخاص همینطوری اومدن نقد میکنن آیا برخلاف این چیزایی که اینا نقد کردن نقد شده خیر از صحابه ببینید چه نقد میکنن این هایی که با اسناد دارن نقد میکنن مثل دبی شیبه مثل امام لولاکی مثل امام, امام ابن باث در ابانه مثل امام هاجرری در کتاب شریف این بزرگترین های اهل سنت سن. هستند هایی که اصول اعتقاد ما گفته بله ابن بعد میاد از اینها استناد میکنه اساس اعتقاد سلام، ابن تيمیه منشأ فکرش از این کتاب ها بوده. نه اینکه ابن تيمیه یک کتب برای خودش ورد. ما برای خودمون استناد داریم، اساس داریم، برهان و درکتاری، این مدرکیمون. با استناد صحیح، که نکن میشه تو برای قبول نکنیم اینکه نکلی، یکی بگیم بر سر کاش، این عمرم بر خطاب. عبدالله بن مسعود میگه اجل سو بنا نزداد و ایمانان بیای تا ایمانمون زیاد بکنیم. بیشتر ایمان زیاد میشه با ذکر و تلاوت قرآن در دعاش میگفت اللهم زدني ایمانا و وفقه خب این اثر این دو تا اثر به حقی در شعب ایمان از ابن مسعود با سند صحیح نقل میکنه و اثر دوم اللهم زدني ایمانا و یقینا ایمانا و یقینا و فقه این اثر عبدالله بن احمد الحمادی کتاب السنن خلال در السنه اجری در شریعه ابن بخت در ابانه لاناکای در شرح رسول اعتقاد در السنه و بهقی در شعایم با واسطه صحیح چیکار بکنید اینها مبتدعن اهل ای حنفی متعصب اینا کافرن اینا که ای گفتن ایمان کم و زیاد میشه خب ببینیم معاذ بجبل بازم با واسطه صحیح میگه که اقل نوع من فاع بیاید بشینیم ایمان بیاریم ایمان بیاری ببین ایمان ایمانمون زیاد بکنیم چرا ابن حذر چیز جالب دیگه چون این اثر به طور معلق ایمان بخاری در صحیحش نفت کرده اجلسو بنا نومن ساعت نومن ساعت دلیل بر زیادت در ایمانه چرا؟ چون معادم جبن و دور برانش اصل ایمان رو داشتن اگر اینا اصل ایمان رو داشتن کی داشته؟ آیا معادم جبن میاد بیاد بیاد بار ایمان بیاری؟ خیلی اجلسو بنا نومن ساعت یعنی بیا بشینیم اراده بکنیم و ایمانمون را زیاد بکنیم این ترجیشه که ابن حجر میده و با واقعا هم ثواب درست خب از جمله آثار این اثار هم بخاریم معلق طور و به طور مسندش ابو عبه در کتاب ایمانش و تحقیق آلبانی میتونی ببگذفی افتادو ابن عبشیبه در مصنف و عبدالله ابن احمد در کتاب سند و ابو بکر خلال در سنده و ابو نعین و ابن بته بلالکایی و حقی، وغيره نقص عن إن أسرى معاذ عبد الله النرواح ده خير أصحابه وميجره حلابش وميجره بي ت ميقولت نؤمن تعالى تعالوا فالنسكر الله ونزيد إيماناً بطاعته ونزيد إيماناً بطاعته بيا إيمان مبصعات بيا لعله يذكرنا بمن غفر إن أسرم. بازهم باستانه ده حسن با چهار تاریخ ابن أبي شیبه نقد کرد و همچنین ابن باتر در ابانه و ابن أبي الزمانی در اصول السنة و همچنین ابن عافاکر در تاریخ با چهار اسناد نکشید ابن أبي شیبه ویهقی و ابن باتر و ابن أبي الزمانی و ابن عافاکر جندب ابن عبدالله البجلی شيلين مي كنا مع رسول الله فتيانا حذاورة. بيجي هم رسول الله جواناني قدرة من من بودي حذاورة. يعني جوان جوان مدر. من لا توان مع رسول الله فتيانا حذاورة. فتعلمنا الإيمان إيمان وياض برفدي. جندب بن عبد الله البجليشين ميجي الصحابة رسول الله الله عليه ثم تعلمنا القرآن. تجددنا به ایمانات، قرآن رو یاد گرفتی و ایمانمون زیادتر شد. ایمانمون با قرآن زیاد شد. و ایدات یس علیهیم آیاته زادتهم الایمان. ایمان زیاد میشه با تلاوت قرآن، با فهم در با فهم قرآن، تدبر در قرآن. عمر بن حبیب الخطامی رضی الله عنه چنین می‌گوید. الایمان یزید و ينقص. ایمان کم زیاد میشه. نگام کنید شماش در فکرتون چینی میاد چرا این صحابت وحد ایمان دارن میکنن؟ نگاه بزنید یک قسمتش عبدالله بن مسعود، عمر بن خطاب، عبدالله بن رواحه، پشتشام عامله بیاد بیشینی ایمان مزیاد بکنیم درسته؟ آنها کم و زیاد ایمان ندارن، پشت عامه ایمان مزیاد بشه. بیا برویم زیک بکنیم تلویت افراام بکنیم. لیکن الان میبینیم امير بن حبيب میاد برخورد میکنه. چه موقع برخورد میکنه؟ فقطی که الان دیگه الان بزر نفاق و بزر اون تجاهم در امت کاشته میشه مرجعه میان مجوس میان، یهود میان میخوان عقیده رو تحریف بکنن مسلمان را منحرف بکنن میان برخورد میکنه چی میگه؟ میگه از ایمان و یزید و یا نقص فقیله و ما زیادته و نقص. اون سآل میشه زیادت و کمیش چیه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادة بيكر خدمة الله يذكركني فيضربكني فتسبح بجم وحمد سقيش بجم إن زيادة شف وإذا غفلنا وضيعنا ونس ونسينا فذلك نقصان فساتف راموشى دورية خدمة لا ساتف جمره نقصان إيمانه إن إي نقصان إيمانه عمر بن حبيب الخطامي إنم أثر بازم امام نالتایی امام عبدالله بن احمد و ابن سعد در و نسائی و خیلی از ائمه این اثر روایت میکنن این اثر هم جز حسن حسنی هست که روایت شده و امام نالتایی میگه میگه این قدیمترین اثری هست که در نقل در زیادت ایمان و نقصانش وارد شده حالا هرچند که قدیم ترین که از اونم داریم یکی که منظورش قدیمترین اثری که در برخورد مرجئه گفته شده اولین جز اولین کسانی که با مرجئه برخورد کردن اصحاب رسول الله ما صحابه رسول الله را یا قول حنفی هایی که یک قر بعد از رسول الله آمدن کسانی که برخلاف اصحاب رسول صحبت میکنن کسانی که برخلاف قرآن و سنت صحبت میکنن از رأی و اجتهاد خودش صحبت میکنن اینا همه مبتدی اینا همه کافر؟ اینا همه مرتد شدن چه فرقی با رافضین و با معتدل کردین با با با با فاسمان؟ چه فرقی با داری داریم ها؟ اگر قرار باشه با صحابه این چیلین برقردو کنیم. اگر من بخوام آثار رو بگم آثاری که اومده بیش از اینه. این کتاب های اهل سنت ایوانه و اصول اعتقاد اهل سنت رو بخونه. او غیر چطور مثلا یحیاب مسعید القفطان که یکی از بزرکن عالمون جرفت اعدیل اهل س میگه دیگه میگه ما ادرک تو من اصحابنا السوابعين الا على سنتنا في الايمان و يقولون الايمان يزيد وينقص اجمع داره نق میکنه میگه تمامی اون اونانا ما میگه کسی از اون علمایی که ما داشتیم نداشتیم داشتیم مگر اینکه میگفت ایمان کما زیاد میشه این عثرم امام ابن هانی در مسائل امام محمد نقل میکنه و همچنین ذهبی در و عجوبة أسرى كدريم، مع الجماعات كدريم عبد الرزاق السناني صاحب كتاب مسنّة عبد الرزاق السنعاني بيقول لقيته اثنتين أو اثنين وستين شخصا شيكا، فذكر عدد منهم أرا أشخاص ذكّم يكوناتون على ما يكبرونه كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يقولون على هذا قول وعمل. قول وعمل نه قول و اعتقاد پنهای که کی میگه؟ امام تحاوی قول و عمل ما گفتیم قول قول زبان و قول قلب و عمل عمل قلب و عمل جواره هر دو شامل ایمان و قول و عمل یزید و ین قدس اجماع داره نمی میکنه ما قول کی میگی تحاوی که چار قربرد اومده یا امام عبدالرزاق سرانه که در قرن دبون بوده شیخ بخاری شیخ احمد محمد، شیخ شیوخ، اج مادران ما میکنند. امام عبدهعبید قاسم رسول الله من باز مهمشیم. میاد حالا این عکسی که عبدالرزاق عز... گفته ایم امام عبدالرزاق استان آنی امام الله لکهای در شرح و اعتقاد اهل سنت نفهمیدن. چهل و پنجم صفحه 958 شماره 1737 شرح و اعتقاد اهل سنت کتاب امام الله لکهای. بعد كنين إمام أبو عبير قاسم السلام كنين نحن يقولون الإيمان وقول وعمل يزيد وينقص بعد اسم بيشة سد و ستين فرزك ميكون إمام ابن بسادش نحن يكون اسم سغسيشة أهل علم السحابة وغيرها بعد اسم أمي كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وهو قول اهل السنة والمعمول به عنتنا. ابن باتت در ابوانه جد دوغوم 84 شماریه هزار و 300 است. از جمله اجماعاتی که نامش است احمد بن محمد اجماع 70 رجل من التابعين و امة المسلمين وفق های الامصار على ان سنة التي توفى عليها رسول الله فذكر أمور منها الإيمان قول وعمل يزيد بالضاعة وينقص بالمعصية بسم اجماع إمام ابو خاري أمير المؤمنين در حديث يقول لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء إن أثر إمام ابن حجر در كتاب فتف الباريش مياده وهمشنين لالاكاين در صحيح وصول اعتقد أهل السنة إمام ابو خاري يقول لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بيشاد هزارة عالم الباريش نشستن بالأمصاد در جهائي مصلحة فما رأيته أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد ويقص نديداً كثيراً اختلاف بكنات فإنك إيمان كمزياد ميشه بإيمان قول وعمل إيمان قولة عنهاني وإعتقادة عنهاني قولة اعتقادة وعملة أولاً كمان بخام إيمان إجماعاتنا بكنام إمام فاسابي إمام, إمام نبيدنام شيباني سهل بن متوكل شيباني إمام بن جليل سبري إمام بن جليل ابن عبدالبر امام ابو الحسن اشعری خودش که گفتیم که عقیده اشعری رو گفتیم بر اساس عقیده قدیش نقش همه اینها اجماع نقد میکنن بر اینکه ایمان قول و عمل و ایمان تمو هم میشه همه اینها مفترده شدن این حنفی ها همه اینها همه اینها این کافر مرتد شدن از این این هزار نفری که امام بخاطر السننه میکنه این تعصب این تعصب که سبب شده که حنفی ها بیان احادیث رد امام شافعی هم بگن چی گفتن رد امام شافعی احادیث را گفتند صحیح رجع علیكم رجل هو اضر علیكم من شیطان له ابن ادریس این جمله احادیثی که لم یرا شافعی میرا در شیطان بر شما ضرر رس به اثر ابن ادریس یعنی محمد بن شافعی تحرس مذهبی دراده شافعیه پس دستر شافی هم نماز درستی تو فیلانه تحصه متعصف ندرسته باشیم تحصه به حق داشته باشیم ببینیم اون اعتقادی که سلف داشتن صحابه داشتن چطور بوده قرآن را چطور فهمیدن خب این خلاصه بحث وضع مختصری که ما میتونیم برای این حنفی ها بریم در بحث اعتقاد اهل سنت. میمونه مسائل دیگری که ما بایدش به پردادیم شبهات دیگری که دارند ما فقط یک مرور مختصری بر اونها خواهیم کرد شبهاتی که دارند چهار پشت شبهاتشون گفتی درسته و رد بر اونها هم دادیم از جبه شبهاتشون اینه که ایمان مثل قول خوارشت گفتیم ایمان یکی که هست اگر یک کسی تسمتی شرط همش میره. ما گفتیم این قول خوارشت قول مرجع هست فقط در این شبهه که دنباله بحث قبلیه چه فرقی بین اشعاره یا بین ببخشید بین مرجع و خوارج و هست در بحث همین مبحث منطقی اگر یه چیزی یکی کش بره همهش میره خوارج منتظر انجام دادن واجبات و ترک محرمات را از ایمان میدونن انجام دادن ساعات اعمال و عمل را عمل را ایمان میدونن مرجع عمل را از ایمان نمیدونن درسته از این لحاظ اگر کسی واجبی را ترک کرد در نزد کافر کافره ولی در نزد مرجعه کافر نیست ایمانش کامله در نزد اونها خوارج ایمان با یک عمل بدی از بین میره تمامی در نزد مرجعه با غیر از گفتار یا اعتقاد اون ایمان برداشته نویشه از جمله شبهاتشون اینی که میگن زیادت و کمی در بحثه مخلوقه مخلوق هم. خدا کم خدا کمو زیاد میشه درسته مخلوق کمو زیاد کم و زیاد میشه پس لازمه کمو زیاد شدن ایمان اینه که ایمان مخلوقه این جمله شو این از خواهد شد شو شو. گفتن چی اون چیزی که زیاد میشه چی مخلوق یا خالق مخلوق و لازمه ایمان که کم و زیاد میشه که شما علا سنند و کم و زیاد میشه اینه که ایمان هم مخلوقه جواب جواب اون چیه؟ جواب اون نیمه یه حنبیا خاطی نکنید ایمان یکی از طرف خدا داریم و یکی از طرف مخلوق یکی از طرف امر خداونده این که کار ماست آنچه که بر به خدا ادتولیت علیه هم آیاتو این آیاتوی دیگه همون زیاد نمیشه این صفات خالقه صفات خداوند اون چیزی که در ما تأثیر میده از قرآن خداوند اون چیز همون زیاد نمیشه اون چیزی که زیاد میشه ایمان ماست فعل ایمان اعتقاد ما کم و زیاد میشه یه موقع به خدا نزدیکتری کرد یه موقع خدا از خدا دورتری پس ایمان فرق داره که از جهت خداوند باشه که خداوند بخواد اون ایمان رو کم و زیاد بکنه با خاصه خودش مشیعت خودش قدرت خودش و زفاد خودش و یک موقع از, از طرف بنده هست باید نگاه بکنیم که منظور اون طرف چیه پس از جهت خداوند، صفات خداوند، هیچوقت بهش گفته نمیشه مخلوقه. چیزی که مخلوقه مایی و افعال ما. پس با این تفصیل مشخص میشه که امر خداوند، ایمانی که از طرف خداوند یک مقصد داره و امری که از طرف مخلوقه یک مسئله دیگری هست، عمل دیگری هست در دست خود مخلوقه بخطره همینه که امام محمد سنبل میگه کسی که بگه ایمان مخلوقه کافر من قال الیمان مخلوق فهو کافر و من قال قديم فهو مفتد نبوده که پیامبر بگه ایمان مخلوق یا مخلوق نیست. صحابه هم نگفتن اگر بگه ایمان مخلوقه کافری چرا چون ایمان وقتی که بگید ایمان یعنی ایمان به خداوند، یعنی ایمان به قرآن این یعنی اون چیزیه که قرآن ازت خواسته. یعنی خود به خود برمی‌گرده بچی به قرآن و صفات خداوند. کی کفره قرآن صفت خداست و خداوند خالصه. بخاطر همینی که ما در داخل چی به اعوذ الله التامات من شر ما پناه به کلمات تمامات. کلامت کلمات تمام چیه؟ قرآن، قرآن صفات خداست، مخلوب نیست. حالا این اختلافی که هست در بین معتذله و اهل سنت اولا شبهاتشون بعضی ها که اصلا اتاسی که نداره که هیچ استدلال به با احادیث موضوع مثل حدیث ابن عباس که نفت میکنه رسی که ایمان لا یزید و لا ینقص حدیث موضوعی هست از جمله شبهاتی که لوات بهش استدلال کرده که مأمون و جبیباری دو دو شخص دروغو هستند که در این اثنات واقع ها. این اثر را جوزقانی در اباطیل و ابن الجوزی در موضوعات نقل میکنه یه روز تیجانی نیشاستی بود در مناظره ای گفت که یه حدیث رو نقد کرد گفت که آقا ببینین اهل سنت دارن این حدیث رو روایت میکنن و حدیث دارن در فضل آل بیت این چرت و پرتی میگفت. خب اون شخصی که باعث میکنه گفت که ببخشید این حدیث اهل سنت کجا روایت کرده؟ گفت خودشون در کتاب خودش رو روایت کرده. خب چی کتابی روایت کرده؟ گفت که کتاب موضوعات ابن الجوزی. ببخشید این موضوعات ابن الجوزی چیه؟ این بحث نمی‌دونم موضوعات ابن الجوزی چیه. حدیث موضوع رو موضوع چیه خوب یعنی موضوع موضوع بندی شده. موضوع فلان و موضوع فلان. حدیث موضوع دیگه موضوع تا خوشی داره. که این بدبختی. برو این مقدمه موضوعات رو بخون. الموضوع هو المختلق المكذوب المسنوع. حدیث موضوع حدیث مختلقی خلق شده مسنوع شده ساخته شده حدیث دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و این موضوع چیه. جاهل سنت خودشون در کتاب خودشون بده به وجود این حدیث رو نقد کرده مولویوسی ولی که برای چی برای اینکه اهل سنت بدونن که این حدیث نیست بلکه گفته یکی گفته متعدبین و اونهایی که سر رسول الله دروغ بستند معمول و باری هر دو تا دروغو و ضاع تا جایی که ابن میگه خبیثون و ضاع یعنی اتقاد مثل هشام بن عمار و دحين بالموضوعات اشعب نام وای امام صدق حق و همچنین امام دفیع این شخص نیاد بر اونها دروغ میبنده مثله یستحق من الله و من الرسول و من المسلمین مسلمین اللعنه الله تعالی قول لعنه شو دروغ بر رسوله دروغ بر رسوله و دروغ بر کی بر خود الله جل شانه انه لا ينتقن هواه هو الا وحی من شخص <تصح> خودش و صفاتنی کنه باید بلک بحیات سرپ برای همین اگه اما منعیم یار چی لعنه تشبیحونه اما من حبان چی میگه؟ میگه که کان دجال من الدجاجله ظاهر احواله مذهب الكرامیه وقال الذهب له طامات و فضائح این مامون مامون شخص دروبو دجالی از دجال و امام زارق‌طنی نسائی بازم همین کنیم میگن که چی؟ الله درباره‌یش می‌شن ببینیم احمد بن حمل درباره‌ی جو جویباری و نسائی درباره‌ی زارق‌طنی درباره‌ی اون چی میگه؟ درباره‌ی در در همین در احمد بن عبدالله الله جویباری نصایی و زارق‌طنی یه کذاب جوزجانی جانی میگه کان یضع الحديث ما ادری حس حس حس حساب ایمان احنا میدن ایمان بر در نداره درد رسول الله دیگه ایمان میمونه برای انسان من کذب علیه متعامل فریت بام قدم من لماذا تصدر لعنا مشاقصة؟ يمكنك أن تصدر برس الله عنه أبو حسام يقول دجال من الدجالين كذاب يضع, يضع على, ال... على الذين يروى عنهم ما لم يحدثوا به لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه عندما تذكره يمكن في المقابر الجرح لماذا تصدر أحاديث ابن ماجد؟ لا، لماذا تصدر أشخاص هیچ وقت نمیان در اصولیشون اعتقادهاشون از این دروغگویان روایت بکنن شناخته شدن. سنت برهان دارن مدرک دارن برای اعتقادشون هیچ وقت این احقوال این رو قبول نمیکنن احادیث اون نیست از جمله احادیثشون حدیث محمد بن کرامه که میگه حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا سفیان بن عیان عن عن قال ایمان لا يزيد ولا محمد ابن کرام شخص ساقطی در علم حدیث و احمد بن عبدالله هم بزن ابن عبدالله شیبانی جويوري همون قبلی که داشتیم بازم دلی نسنات هست دروب بو کذام ابن امام ام عدیمی کان يضع الاحاديث لابن ابن کرام ما یریده ابن کرام بیش بکولی می داده ای چیز بیش بیش برای ابن کرام حدیث نزده و کان ابن کرام يضعها في کدوبی عن ف امکان دارم از اون نه نیکنم. Allah این حدیثی که ایمان توجیه کیم امام البخاری بری کتابش می من حدث به هذا استوجب الضرب شدید و الحس الطوی کسی که این کتاب روازد می نویسند حالا تراوازد بکنند این جیباری مستحق زدن و حبس که زنونی این حدیثی که نقصش، سه حدیثی که نقص نقص دارد از اونها ا دیگری هم که هست، ثقل وانه نداره، همشون دروغگو، دجال و مثل حدیثی که انس میگه سره باید بونه که رسول الله فرمودن، عاشا رسول الله میگه من قال ایمان یجد و ینقل فقط خرج من امر الله فمن قال انا مؤمن ان شاء الله فلیت له فی الاسلام نصيب اینا بازم موضوع و آفاتش و دردش در محمد بن کمیم که من حباب میان کنای ظاهر حاکم امام حاکم نشورو میکه ذاب خبی امام میگه وضع غیر حادیث امام من عیم میگه که ذاب ابن الجوزمی میگه وضع موضوعات میکنه خلاصه خلاصه بحث مرجع چی انسان مومنی به خودش اجازه میده که این حرفی بزنه یا بخش اجازه بده این صحابه را همه دور بنداده بچسب این دروگان آیا دینه تدیونه ققله آدم دین حق دین صحابه را رل بکنه به این صفحه و احلام این دروگان این اشخاصی که عمضن بر رسول الله دروگ بسته خب یک کمی دیگه بحث مونده در بحث مرجعه که ادامش خواهیم داد فیکنالا قبل از اینکه که ما بفرسدیم موقفشون از نصوصی که تلالت بر زیاده و کمی ایمان داره سوالی که مطرح میشه اینها ایدهشون چیه در باره, در باره این آیات این احادیث؟ که کم زیاد میشه نظرشون گیده چیه نیاز به وقت داره که انشالله بیزنه برای ترسایی لیکن قبل از این که ما بپردازیم به اون ای که دارن ای که بیان شده ما میپردازیم به از کسانی که اومدن الان به قول خودشون حد به وسط را بگیرن گفتن ایمان زیاد میشه ولی کم نمیشه گفتن ایمان زیاد میشه ولی کم نمیشه الان هر که افوال دیگری هم نفت شده بایی این قولی که شده و برای خودشون دلیل دارن دلیلشون اینایی ای که الان اومدن گفتن که ایمان زیاد میشه ولی که کم نمیشه دلیلشون حدیثی هست که از معاظرون جباب نح میشه که میگه که انه اتا فی میراثی یهودیین واردهو مسلمون میگه که این شخصی اووردن که شخص یهودی فوت شده بود که واردش مسلمانه. حتما پسرش مسلمان پترش مسلمان بوده میگه که معاذون جلاتینگ میکه سنی شنیدم که رسول الله گفته اسلام و یزيد و لا ينقص اینایی این کلام گفتن که ایمان زیاد میشه ولی کم نمیشه حالا این بعضی از اشعاری گفتن روایت از ابوهنیته هم هست و بیشتر این این قول ها گفتن و نجاری ها و بعضی از بازی های این فرسه ها میدونم خاطی می کنید کی ان و کی نیستن خوش جای ولی خوش ها گریه ثواب را حکومت عمان ابدیه گریه سوارجان. اینا میگن ایمان زیاد میشه ولی کم نمیشه چون در قرآن کمی نیم حالا برای خودشون الله کرد از خودشون عدل دارن از جمله دلیلش همین حدیث معاصی رضو الله میگه افتد و خاشر رسولان گفت الاسلام یادیف و لا یانقص. این حدیث امام حاکم میگه صحیح و الاسنات ولم يخرجا و بحقا و ذهبی امام حاکم رو باید که در مصدر و بیحقی و جو جورقانی در عباطی این حدیث ابو داود نقل میکنه و احمد و سیالسی و حاکم که انا گفتیم امام علبانی چنی میگه میگه این حدیث معلول به چند عدت مال در مستند در نزد ابو داوود چنین دارید حالا نگاه اختلاف در این در در جور در جورخانی در اباطیل چنین اومده از عبدالله نبرهیده عن یحیی بن یعمر عن ابی ابی الاسود عن معاذ بن أبو دوجن الأستريق عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الوصي سنة عبد الله بن بريدة أن أخوي اختصما إلى يحيى بن يعمر يهوديا المسلم نوّبنا أثلا فورث المسلم منهما فقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أبو الأسود من الشخصي بمن جوف انقطعت يعني انقطع این قطعه هست و اینجا این قطعه شده در سنن در سنن ابودودفت ابودودفت با معاد مقابله نداشته و این شخص هم معلوم نیست که کیه و امام به حقی هم به همین ایراد میگیره علت که همین میدنه میگه این شخص مشخص نیست بعد از این که رو روایت میکنه میگه که این شخصی که ابو الارفد از اثنق میکنه از مادم جبل مجهوله پس در نسید این حدیث این روایت منقطعه امام حافظ ابن حجرم در فحیل باری چه میگه بعد از این که تفسیح حاکم را زک میکنه میکنه میگه و تو و بالانقطاع بین الاسود و معاد از اون انتقادهایی که شده این تفسیح حاکم که حدیث معلوله به انقصار بین اثبت، ادوالی و معاد. لیکن سماعش ممکنه، یعنی احتمال در اول اثبت از کی از معاد شنیده باشه. ولی جو رقانی میگه که چی باطله و خاطر همه در چه کسان میگه؟ اباطیه. پس، وقتی که احساس یک اعتقاد حدیث ضعیفی باشه حدیثی که چنین در مقاطع دیگرش باشه مشفردی مثلا راویش می‌کنه و ابن الجوزی هم در موضوعات این حدیث رو روایت می‌کنه ابن الجوزی در موضوعات روایت می‌کنه جلد سوم صفحه 23 و اتهام را به محمد بن مهاجر اتهام وارد اتهام را به محمد بن مهاجر وارد می‌کنه و که ابن حبان گفته کنه یدعو الحدیث محمد بن, المهاجر. محمد بن مهاجر الان این علت دبومی که در اسم در جورقانی و جوزی هست محمد ابن مهاجر که ابن حبان در میگه یدعو الحدیث این حدیث را دروغ بر رسول الله میبرسه هم بر رسول الله نقل میکنه خب حالا دیگه فکر نکنم نیاز باشه که ما بپردازی به یعنی این مذهب رو بیشتر باز بکنیم حتی مذهبی که اونا گفتم حساتش شنین باشه دیگه تکلیفش مشخصه لیکن الان مرجع بحثش باز شد چون خنفی ها خیلی متمثکن دفاع میکنن کتاب ها نوشتن دیگران که باشو مخالفن تکدیر کردن خاطر همین ما به طور گستده شباهاتشون رو ولی این اقوال که بعضی از اشائره و گفته ای از خنه نیست. الان یک گفتهی ضعیفی هسته که کتاب ملل و نحل یاد میشه ازش بخاطر همین منطقش کردیم لازم نیست یعنی که این حقوق نفیان بشه خف کسی هست در این زمینه در این راستان اشکالی داشته باشه فکرم تا اینجا افریم مطالب کافی باشه نسوال اختلافی زیاده. یک اه... اه... اه... مقدار کمی مونده از بحث مرجعه انشاءالله موقفشون هم تا گفتیم در قبال نسوسی که درش زیادی و کمی ایمان آمده بعد بحث استثنام میاد استثنام خیلی نیست من خیلی خلاصش کردم بعدم بحث تفاظر احل ایمان میاد و اموری که ایمان رو تحبیت میکنه که مهمه برای ما یک سه چهار جلسه دیگری خواهیم داشت انشاءالله با بحث ایمان که در ایمان در ببندیم. خلاصی ا خلاصه‌ی اعتقادات در مبحث ایمان داشته باشیم چون بحواد زیاد، زیاده فکتری ها زیادن، اینو تکیر میکنن، اونو تکیر میکنن، باید اساس و بنیه‌ی ایمان، ذات عقائد، اصول اعتقاد با محکم بشه. کسان میتونه جوابش به بحواد را بده، جواب مخالف این رو بده. پس این افکار مخالف، افکار افکاری که هست در جامعه فلسفی و اندیشانشوها ما باید در این درس ها بیانش بکنیم، رد و ردود برنها بدیم. همونایی که مصارفاً در از من از با خودمون هم از وای مخالفین خودمون مهمه که ما بدونیم خیلی مهمه و کتابی که توصیه میشه طلبه داشته باشند و با مطالعه بکنن کتاب زیادت الایمان و نقصانه هست و حکم الاستثناء فی زیاده و نقصانه و حکم الاستثناء تعلیف تألیف عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر شیخ امون عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر پروپوسوریست که سیت بالایی در علم اتقاط و علم ملن علم نحر داره و همچین در شرح نبری از جمله دروسی که ما با داشتیم شرح عدب و فردی بود یکی از علمای عدیب و معدب و علمایی ربانی که معروف به توازایش معروف به سمتش و ملایمتش در حدیثش حتما کتابش زیاده از ایمان رو بکنید را بخونید اگر گیرو حالا هرچن کتاب خیلی زیاده 677 بحث فقط در باره زیاده از ایمان و نقصانه شد کم و زیاده شدن ایمانه لیکن ارزش داره که انسان اقوال اهل سنت اقوال مخالفین با اهل سنت هم به طور دقیق داشته باشه هرچن که در این کتاب اصنی از سروج و یا ازای خمشه ای و ها نیست چون اینها ما از اونها داریم مینالی ما از اونها داریم مینالی خب کسی سؤالی رو بسه داره این درسای اعتقاد همینطور کم کم بین چهل چهل چل در چل فنگزه کم کم بهتره چون جمبندیش و خوندنش مشکل دشواره باقتنی که برداشته باشید بخونید و محکمش بخونید و ما خیلی زیاد اینو نش نمیکنی. حسین آخرین کلاسونه، درسمونه. سنگش طبق طرزشه كده. سنگینه باشه برات. خب سوالی نیست. سبحان الله، خان دیک سبحان الله، خان